گوگرانی عزیز و خوشویز جوان ترین سلاوتن لبید خوشحالین لبشی سیمی خوان نوی کتبی چشت مجاوری هجار مکریانی حتی نویلتن فرمون هورمان بن. پجاری مکریانی، لوکاتی که سرگزشتی جانی خویده یارتوه، پش اوی که لبغدا جای لغد بیتو دیت کرکوکو، لای ابراهیم احمد جای خویده کتوه، بلان پش ماوی که هست که اوش جای خوی نیو بویبنا چاری دگره توه شاری بغدا. که لبغدا بمشیوه، بس یک لباسکانی خوی لکرکوکده یارتوه. دلی، لوکاتی لمالکی کرکوک بون توشی سید احمدی سید تها حاتم، وتم کاک شون وادبه ای مبریکوملین من چن دم هيا هیچ پولیسک ناتونه بت ملکمن بژ زانن ناتوان بدگرن قران به حقت با صاحب سبید گلخوم دبم وتم کاک احمد بلی کوپیک هيا به گلخومی بینم کدی تو بوشت واد نالی زورش خدمت به کرد وتی بسر چاو ایشد بود سبې ساعت هر ستر بترومبل د چین ماشینو کلو پلت حل د گرین بلان نچی پشمن بیا و لپیای بد قول تورم ل ابراهيم پرسي غتی زور باشه سبې هر ساعت حوت گیم اوټیل غتی ان حی هو سید احمد د مکرویشتو استا استاو استاش او کبرایم ندیتو روجیک ماموستا علی حمدی جیرانو خنه خویم حتل در بری ماکسیټ هندیک پلیخانوف ملیخانوفی تدبو که دیگه فلان رجیو فلان تقدم بو من تنهاگمو هر دلیم بله لپروتی من زور مرتجع نخوش دوی وتم بله بله مرتجع زور سکبه و توی اری هزار مرتجع بچی علیم وتم با خدا ما مسالمش نه زنم بله من نخوشم دوی آوم او د مېله توريز د بيمارستاني روسانبون مدیر دجبان توريز لحکمی پیشوريده کناوي نمازي بو دګلمند له جوړي کوین ک اویش نخوش بو هر قصد د قصه دکود دیگو من کومونیستم ايتو منش د موت دیاره من کومونیستم روج یک دوی اوغوتی من کومونیستم پرسی حجار پینال کومونیست شیا من شوتم نمازيان حرام اگر پتر لتوې لبزانم ندکرا بچمو دوکانی وستا دیسان بیکار دخولامو دم پرسی بلام امجار برسی نمم قزل جیو زبیحی کارین هبو لبغدا یاریدین ادم روشیک توشم هات با توشی ارتینو و تی ارمانیه که در من فروش داله بچو کرکوک شاگرد اکاز با منگه شانزا دینار من ناچم تو لجیاتی من بچو من جوتم والاشتیکی چاکا مالت اوابی تارو قیتارو دو دیناری لأرمانیک هستند وتی اگر قبولیان نکردی باو دو دیناره دیتا و بغداو زیان نکی لسر را چومو و کرکوک لأرمانیک پورتویان لستو دیو سونا بو ما شاگرد شاگرده که سوریای مسیحی ها بو جامی روتوش دکرد و اکسی گوره دکرد و ناوی حنا بو من لجوری تاریکه اکسم چاب دکرد مناله که آشوریشی کرد بو و کرکوک پورت در کرا بو لعکاسی نهزانی و کارکی ایمه بو من درواند ارمانیی که زور بدین بو زور در چوه کواسه و زور جرکشه دهتالای کارکم که با شعریش باسم کردوا لحشتی بیانی و تانی و رو لچواری پاش و تا حود بو کارکو که ل بغداد گرمترو زستان لکردستان سرد تره جهندم یکه لودشته لجوری تاریکی بی منفزده باوشینی برقی وها گرمده بو د روژانه لده میگرمه ده چند و تا جرک راس ده اکند. دمگوشی، وقت ده جار ده او حلک شرابه اراقی لده چورا. لسر لیواری چو میخواسه که همیشه وشکو تنیا لروجی باران و سیلاب ده اوی تیدایا جوریکم لأوتیل سر جسر گرد. بلان چون جوریکو چون اوتیلیک. کونخانوی چی با قورکراوی راوی درو دریج کلناو ده چاوه چاوه کراوه. همو دیوار قل شاون او جورانی رو بخاسنین دبی چرایان چراین تیده هلکی بونی ترشوح گیشددکا جورکی من لروی لر خاسبو رونک بو پنجرکانی داری کن چکولی خشتی چوارگوشی بیشوشبو درگای وقت درگای زمانی عباسیان با وزماری سر با قبا نخشابو لگیشه نچوبو حتی ددکر دو جیره تو مار ب تو مار درویشت در کریش منجی بو و نو بازار کوتم گوزیک کتریک خلوزو مقالیو گسک دو حسیر دو استکان منجلې چې المنيومو دو قابو کوچ کې کو خوېو شکر او چاو برنجو هنده رونم کری کمه ور د بابتی دیش کله بیرم نماوه لېفشم لبغداوه مال های مال کبره کشکوک من له اوټیل بو رجانه د تختی که داری نیدامی با قد دو نیمکت پن، و تی من جگم نیدانیم، بالای توبی، لیفه لسر تخت راخو، تخت خواد دریشکا. جگل یک شمکه شم و چند بو، نیوارا لچشتخان و شو بیانی بنان و پیخوری که وک پنی رو ماستم دگوزرن. لچشتخانش وک زوربه کرای کرانی فقیر دوای فوگم دکرد، که هم ده خورشت بسر برنج دکن، نک خوارشتو برینج هر یک بجا که گرانتر دکود اونج یک شمان که تملید نو لجاتی خورشت تریا راشکا یعن کشمیشم تیاده کرد کهو شیشم بخوام راشده حال شبمو تاجم نبود. تنهال لذزتانو سرم داد زور حالم شربو. نکونی جور دیگرا، نه اگری صوابش خبری هبو کد هاتم بخوام، آم دکولان. دوشو شم لیا پردا کرد. دم خسته ناو توی لیفه و لیفکاشم. با پتک بته اتکو دبست واه. کلا سرم لانشی و دچو من نمی آوه. عرقم دکرد. لپر با لرز لرز خبرم دب شوشه او ساد بو بونه و دیسان و دیسان او گرمکو ده شوشه که شوانه سیچوار جار امکارم ده کرد میوارویانی گرم اکدامیست استراحت بکم واوی لابو هر بازار رکو چند میوارفرو شکل دم خاص و برامبر بجورکم هاورین ده کرد تنزیلات شربت بدو فلس تروزی بلاو خیاری امام قاسم هزاران شتیتر چاقه یک بو میشکی سرم ده زرینگایا و ملاش شکر مصطفى لفقیتی و گئی بوا بغدا، زور زیرک بو لدانشکده شریعه قبول بو. ایک ایک بو کرده بو دا. دانشجو بو، دایکه کی فقیر بو لگونده کی دولی کرده بو مرده بو و هیچی نو یاریده که رکای پیب ده دانشجو شریعه جگه لخواردن و جلی ملیانه راجه پنجا فلسیبه گرفان پولی ده دره بلامل چوار منگی و چانی هاوینا درگاه ده آخره نخواردن گرفان ندانش کدش دک رایوا دبوهای خویان بره برن ملا شکر دشو دبو با شاگرد قوچی شاگرد نقاشو هاوینی دا گوزرن پیکوش اشنا بوین روش یک لکرکو کاتلم و تی که که چم لیدکی هرچی گرام کاری ندومتی و تم اوی بو چیه ور پیکوش دا جین تا دا و دانش کده حقوق کم لای توبه. تا کار دیموه چشت و نانساز که و با خود پیدا که و جگه هر توکمانده بی. ملا چو بو؟ پریموس یکی لده با امانت ورگرت بو. کرمان با مقالین ملا اشپز اگ بو قط نم دی برن لکه بونی دو کلی لینه. شیخ معرفی برزنجی که باسی اعدامان کرد حاتو چوی کردم؟ جرجر بن هر د بردمه ماله زنیب کوم چن تینو خوینم نو مو نشته نم همو کتاب بکرم پروژه کی تازه لچا بدراوی هنه وتی نیوان حلبرینی پرکتبم زور ل ناز ام کارم ل باتی اند کو بشی خو نه جبنده و اتر هر کتابه در چوبایا مصری یا لبنانی و عراقی بوایا د کرم من د پج دا دم خوینم ده جاریک حنا بود پاز دروغ مرا خستی ورگرد کسرانیک لعراق بکه حتی او وقتی برا هر خواه دائما و لباس دا را و دبله مقدار دغلاش هزدک از دچینه دیدنی آبادان لتانیش قصابی کی لباس رای دانیشته بود لیپرسیم چندری و تم خالکی شام یخی گردتم رای پرندم رای تکاندم چه قویدره نازگم بزره یک پسام حواریشم بونکره خالک کدستیان گرد و تیان چی و او فقیره چی کردو. ایو شوتی چون چی خردوه شامی او امام حسین کشته تا در نکود کوت کمن مسیحیم د سلیبرنده دغه ولستا کم پورتویان جارجر بسم له هند کې خرافاتی مذهبي کرد. کشه هرمنیک پیوي کی سی سالی ریش دو فلی قنبو هرګا د حد دی واندم پورتویان ابونا باو کمن دغه عزیز با کافرت نک ایو شوتی شتیوا بودلی زور کړی کی باشه او بو پیاله اوي ابونا تور شکرو جوانو بهزو توانی اگر چلمریشت لو دشت ببر هلدا کوم بلیم بیانګره بو خود چندت بوده جیدن اوي شوتی خوم بپسینم دمونه جیده کبر شوتی ادي اگر بلن پیرک بطنیه سیاست روی لداشت گرت کل کی هر دوانی پیکو غریدا لی لقیم کرنو گن می دجونانی پیسوتاندن دفر می چی پورتو یانوتی دلم او دروی چی اپریل در سا اول اکتب مقدس دا در باره سامسون نسراو پورتوین وطی کتاب مقدس مخوندوتاو بلا هم فکرم لو دروازله نکردوتاو پورتوین وطی نمگود کافرددکا ایدی اوش وطی نمگود کافرددکا پاشان کابراهات جواب پیا اگر ایمان باور کردن بدروی واشاق دار بی بحر نبی دگل پیره ارمانیگ دا, دا بوبومه اشنا کردی زور بچه دزدی، روزگار لپرسی، او کردی چون فیروی، وقتی کردم من 20 سال میرزا خانی کالهربم، وقتی راج خان هر حربزی اسمیلیه هد، چوار میرده کی قاش خسته بود سرقت، تبله بالاتیلا گی سری و فیتویلیه دا، رویت کردم، وقتی میرزا آخودا سالک منی بکرده تا شای ایران، منش لوساله شاعت یی د چدکل وتی والله واد ریامه ام مملکت وه سال بیا لسته تو پاک نکرا باو لا اوټیل بورده حاجی کی مکی میوان بو هاتبو خلق بت بک وکا لا کن بک نه شارزه خویا اوی اوټیل دبره بیا وین زور کیشه ګتم حاجی دګل اوی دسنوش چونی وتی باشم اصحاب پیغمبر لا ټیکو لا ګوزګ د غسل یاندکل ملا شکر بردی میادیدنی ملا الله نو که پیاوی زور با دینه لمزگو تی کرکوک با خزمتی گیشتین ملا شکر پرسی فقیه کت للا بو چی لیهات او کرم در کرد امندم گد هیتلر نویجی با جمعاتی لما دینه دکرد کرد باوری نبو کچی ده گد پیغمبر دو آیلوس کردیا کردیه کریوا من ندبو حاوینی گرم یان بلم جهندم بو کابرای خوان اوتیل پانکی که شق و شر ری به تیل پیچراوی پیپکین. ملا شکر وتی مال دولمندی بغدای وشتر خواره ببر پنجره و دگره نو کن. هوای پانکه سر تر ده بی. قفصه اک وشتر من دلای پنجره اخنی تنکه ایوک من پیدا کرد. در کمان دخست. پانکه من پی کرد. به نصیبی دجمند بی. حل مکده جور یگران نفس من تنگ بو، وقت بو بخنچین، لای درکه من نده دیو بی که نوه، بحل موه یک و چه باسه، را من کرد، تاوی که باش کوخینو آوی چاو من سره، وشتر خوره که تور حال ده، لسای دولامنی بغدا من پیوه نده هد. روش یک ملاش شکر وطی، خندو متوه و هر تیو کلکه زور بکاره، پیستی پیو سافورو نکتر د ام رشت که سیرم دید زلامی یک برانبر بچرو چاوی گامیش یک ریش یتاشی او یوشوتی جا چون من یوشتم گامیش هنده چکل شوتی خورده بو نیو چوانی ببو آونه ملات رب وتی قد عقل نبی قانی مالیهاتی بو کرکو حاتو چوی دکردین بر یرمانده کفیره بلور لدان بین حول درز دبی واب کای ل بلور جنید نفس بخویونې برې قامیش من له استکان پر أو فومن اکرد نفس خورد نوه کاری چی گران بو. اگر احیانه جاریک فو بوده خورایه و اونده پیه دکنین تلبیر من دست و و سر نده کوتین. پرسی من قانیه مال چون دست کود بخوا باو پیه و خیرامن و, و تی تو سیدی و کرشیخ دلاشی. چاوه یک خانوی داو پیم. یمشوت من قانیه یهن که با هر توک بابد مبارک نیدرد دکه. و تی نا باو پیه و فرا خاصه. رمزان ب روشی قانه بقاقه ها تجور وتی باوک دریان کردم کاورا دیت می نانده خوم پاشن وطی های فاسق مالکم چولکا تی من وپاری خون نانده خوم خرابیم دگل چه کردوا حولی دابو کاریکی دست کهوه نبو گت من ارابه دستی بیاره وردواله بفروشه سندوق سابون من بو کری ملاش کرو وطی چوار بولبرنگی شی دوه قانه پرسی باوه بول او تمند کارت نیا بود پیدا اکین. ایتر وقت تالیلی درویشن لسر یک دیگود بولبرینگ بولبرینگ. لساقت فروشی دوری خانقه دوان من کری. چوینه بری قواریه بوسانوه. لچاب خانه اکدانشتین دوکان داری که ارمانی که امراز ترونبیری دفروشت لبشتوه قانعی ناسی بود. هایت پیود ملا قانع نبی بی. ایوشوتی باوک بولبرینگت حس ایوشوتی بوی اری والله حس موناد دم تو هیست نبی جابی بی سلامو من دونه بونم بده. بول برونگی دا عرابه ساز بو مجید که کش که امده فروش بو کلوپلی بخرزده که پشتوانو بیداتوا دو دسته پزدانی بو هنکه بی فروشه با تجربه ای که کی فوکرد کرد دریجو استور وک حرامه کرد قانه و تی آی باوگ اما نا فروشم اما با دای کتک خاصه دای کوتک خزانی بو تو رنگه قانه عد ندی بی ش دریش، لاواز، چاوچکولو پروش، لوتشور، لارومد بکندو کول، جلبپینو کلاشچکو بدنمود، لگالتو گبدا بدکولانده اغجنی ندهد. عقیده شخصمی ام با باسی چرو چاوی خانه او گریده او بینانی ور یرابو سرگپو گالتا. روژه ده جر بوم بخونده اتوا لپیکنین رشوشین حال دگره. دویا گوتی باوک بیدره نا. بخوا امشم عبیتا بزمکی منالان بداخوا دراندمو لبیرم نما داندانه یکم لنزیکی پیانصاد بیت دیتا و بیر باسی بهشتی شخصمی عمکرد بوا باسی چرو چاوی قانی نوسی بوم باسی رخصاری نایتا گفتار هموی قلکه و شیوو چا قل جار دوکوی نونراون چاو دای کم دتکینن گناو موی کنلوتی و دو کنی جنات تزری تجری تحت هالانهار. لباسی نصبیده بد ملاسکی شیخ سمع نسیبون ام شیخ قانعی جوان و قوز سرو سمیل نجیم و پیروز لکولوس شریف با ولد بوا بولای کرکوکی هجرت فرموا باوکی شیخ کی دلاش هفته سال جیا بیکو و کلاش دایکی که شیخ زاده نازانم کتکیه دایم دوش داماو لپشتی درخه. عباو اجدادی لم سر تاو سر گدازاده بون سوال کر فل سوال کر قانع ترکی کرکوکی ننزانی بلانبلای و سید بو هجو یکی شیخ جمیلی کرد بو سرطاکی اما بو شیخ جمیل تکیسی هر اینی او دس خانه در هر کری هیچ اقل یخ در یای او شیطان در پتر لسالک لکرکوک رام بوارد سرطای حوینی سالی 1953 بو باسی فستیوال جوانان لبخاریست درکوت. شیخ معرف بوتی وادکم دگل لوانی حزبی شیوهی بچیا بخاریست. اتر بر امریشان نبیو به ازادی بیرو بروی بر خود بخلکی دنیا راب گینی. اخ چند خوش بو ام سفرم بکرده. دو عکسی کالی نه اشکره لیور گردم. روژک پاسپورتی که باینام که با ده دینار برتیل دروس کرده بو. گرژی کلوپلم کرد. حسابی خوام لوستا ورګرد وتم د و بغداده سیاچ مدانی تنکی پر لختیمه ناو نامم ل شیخ مار ورګرتو چمسر قطر لقطر دا کبره بغداد اتم ل سر کرسی دو نفرې پولیس کی روته کی سی سی په حکوملتن جدبو چاینده یاره وتم دو چمن بوبینه پولیس زور سپاسی کړم پاشته وکستای روی زوری نه ورت افسری کی پولیس با دو پولیسو هاتن او افندی اوانه چمدانیتون اوتم بله بله یمنه وتیان مالی قاچا توتونومت نه تدانیه اوتم خوتن تماشا کن او وشکلی چمدان جګل کتب چی تدانه بو کبره افسر لبر خویاوه وتی آی ترس اخ بیا نموس افندی بمان بخشه او پولیسی له تنشتد بو هاد وتی او کبره لمن ترسه بو چای بو کرم دره قاچا غی مسحب لم نو روح مببرز بک به پولیس مکه همو حرام زادن منیش هيكم لوان منیش پیا موت دولته به زحمت چمدان کان مخول بک نو لو سر دایان نی نو شی با سره روجانو کروجانم ستو 20 فلز بو لناری خوند جراو کتاب وو ریکوردیو عربی بدل خوند کریو زورم شای پیان بو شیخ معرف غتی لای من دانی اگر نشاتیو بود ددم ب کتابخانه گشتي با نفوتین بخصم نکل، لبغدا بمال مام حسینم سپرد نامی شیخ مارفم گین و تین سی دینار بدو فلان روش حاضر با یعنزا کسو من بسواری اوتوبوس نیرن برگی چولیشان دا کوتی نده گوگرانی <متصف> عزیزو خوشویست لیر دا حتی نکوتای بشی سیمی خوین نویی کتبی چشتی میجوری هجاری مکوریانی تا بشکی تر شوتن عرم جیانتن شد.